الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و علی و صحبی اجمعین اما بعد ده دقیقه طرف ساعت در خدمت دوستان هستیم با بحث ایمان به آخرت ایمان به آخرت از جمله مطالبی است مطالب که در قرآن زیاد تکرار شده الان یا با نام های متعددی که در قرآن اومده اسم های مختلف الحقه و القارعه یا با اوصافی که یاد شده یا منعقی و دیگر اوصافی که در قرآن اومده در روز آخرت روز محشر که انشاءالله سعی بیکنیم این اوصاف را بگیم چی خواهد شد بعد از مرگ، چی میشود انسان که مورد، اولاً بحث قبر چی خواهد شد در قبر؟ چه نوع عذابهایی خواهیم داشت؟ آیا عذاب بر روح و جسد خواهد بود؟ یا فقط بر روحه؟ یا فقط بر جسد؟ چگونه از خواهد بیرون خواهیم اومد؟ چگونه نیروی مثل درخت؟ اون طوری که خداوند در قرآن مثال زده؟ این ها رو میخوان بکنیم. خداوند چگونه به تصویر کشنده روز آخرت؟ بختی که انسانها از خاک بیرون میان، چگونه بیرون میان؟ این قسمت‌هایی از بحث ما هست. چگونه هست؟ چه اوصافی در قرآن اومده؟ چه اوصافی در سنت اومده؟ فقط مرور با هم می‌کنیم از این آیات و از این احادیثی که متعلق به روز آخرت هستن. از اون مسائلی که متعلق به روز آخرت هست، نشانه‌هایی هست که در قرآن و سنت یاد شده. نشانه های روز آخرت خداوند برای اینکه اثبات بکنه روز آخرتی هم هست یک سری نشانه ها معجزات که به پیامبر علیه السلام داده یک سری معجزات را یادش میکنه در قرآن که این معجزات میگه خداوند دلالت بر اینه که قیامتی هم هست یعنی حرف من حقه و قیامتی هم خواهد بود. یک سری چیزها هم هست که خداوند بیان میکنه از اینکه روح خواهد داد، بحث یعوج و ماجوج بحث دجال ان شاء الله خداوند امر به اون بده که بپردازیم به احادیثی که در شأن یعوج و ماجوج و دجال و مهدی و این مباحثی هست که در سنت آمده در قرآن آمده ان شاء الله بکنیم اول از قرآن بازگو کنیم که و بعد ان میپردازیم الله به مباحثی که در سنت آمده باحث روز آخرت از ابتدای قرآن از سوره بقره آغاز میشه یعنی ایمان به روز آخرت الذین یؤمنون بما انزل الیک و انزل من قبلک و هم یوقنون و بالآخرتهم یوقنون بالآخرت امروز داریم و فردا داریم تا آخرش که دیگه بعد از اون دیگه روزی نیست اون آخره، انتهای چیزه بعد از اون خداوند نیازمند باز. بحث روز آخرت میکنه و از آخرت به یوم الآخر یاد میکنه و من الناس من يقول امن بالله و بالیوم الآخر روز آخرت وقتی که از قبر بیرون قایم اومد روز بعث و محشر که قاعد بود دیگه شبی نیست دیگه روز دیگری نیست همون روز آخرت. اون روز محشر که الان مباحثی که خواهد اومد چی خواهد شد در روز محشر انشاءالله بعدا بحثش خواهیم کرد ولی خب الان این بحث هایی هست که امام تبری هم رحمه الله در تفسیرش یاد میکنه در تفسیر این دوتا آیه از سوره بقره بحث روز آخرت روز آخرت گفتیم یک سیری نشانه ها و علامت هایی داره که خداوند جاهایی به شکل عام یاد می‌کنه و جاهایی به شکل خاص. از جاهایی که به شکل عام یاد کرده در قرآن، فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بعد؟ فقد جاء أشرافها، فقد جاء أشرافها نشانهاش مادد. رسولت محمد عليه الصلاة والسلام ابعستش نشانهاي قیامت فقد جاء أشرافها به شکل عام. قرآن اومده و محمد مصطفی علیه الصلاه و سلام علیه فانا لهم اذا جاءت چیکار فراهم کرد اون روزی که دیگه ندامت کاری به دردشون نخواهد کرد روز روزی که انسان به خودش سرزنش میکنه که سرزنش نخت نداره این روز قیامت این روز قیامتی خواهد بود چون نشانه هاش اومده چون نشانه از جمله رسالت محمد گفتیم علیه الصلاه و سلام یکی از نشانه هایی که در قرآن از نشانه های قیامت یاد شده معجزه محمد علیه الصلا و السلام اونم انشقاق ماه نس شدن ماه که خداوند میگه در قرآن اقتربت الساعة وانشق القمر و ان يروا آیه یعرض و یقول مستمر انشقاق ماه دونصف شدن ماه در مکه وقتی که پرش از رسول الله صلی الله علیه و سلام خواستن که معجزه ای رو نشون اونها بده که ایمان بیارن خداوند به محمد مصطفی علیه الصلا و سلام انشقاق ماه را داد که رسول الله صلی الله با عصای خودش اشاره به ماه میکنن و یک ماه به این سمت کوه و ماه دیگر قسمت دیگر از ماه به سمت دیگر میرود و نه اهل مکه بلکه خارج از اهل مکه اونایی که خارج از مکه بودن انشقاق ماه را دیدن نه که عرب بلکه تاریخ نمیسان از هند و چین یاد کردند که در فلان تاریخ انشقاق ماه را دیدن چون الان این مبحث ها چرا گفتیم علت شیه هست چون در تیه قرون سوم و چهارم بحث فلسفه که میشد و بحث منطق کتاب های ارستو و ارستیتایوس و دیگر قرآن فلسفه وقتی که ترجمه شده بود و عقل گرایی وارد بازار شده بود اون روز شروع کردن به اظهار نظر کردن درباره قرآن و درباره سنت، خصوصا درباره سنت. یکی از مباحثی که بهش پرداختن بحث انشقاق ماه بود. که گفتن منظور از آیه بود منظور باطنی داشته باشه، باط رنگ داشته باشه. انشقاق ماه نباید قضیه ظاهری باشه که ماه دونه بشه. چرا؟ چون خداون هر چیزی را خلقت میکنه سبب و مسببی داره مثلا بالفرص خدا میخواد بارون بباره نمیاد بارون رو همینطوری از فضا پرتاب بکنه آب را از فضا پرتاب بکنه نه عبری باید بیاد بارون باریده بشه و بحث انشقاق ما اینجا سبب و مسبب وجود ندارد چطور میشه ما از وسط نتوشه با میشار نصفش کردن با چی کردم؟ با لیزر بوده؟ با چی نصفش کردم؟ سببش چطور بوده؟ یعنی با عقود در میاد ماه دو نصفه بشه؟ با عقود در نمیاد چون با عقود زور در نمیاد پس چی رده؟ فکر نکنید که من این حرفا را میزنم یعنی حرفایی هست که کفار و مشریکین گفتن نه امثال فاراوی گفتن که معروف هم به فلسفه اسلام و کتاباتشون هست و همچنان کسانی هستن که متبنی این فکرن. این فکر که اون چیزی که با اقضیر در نمیاد بله با اقضیر در نمیاد چون با اقضیر در نمیاد معجزه هست و خداوند چون با اقضیر در نمیاد میخواد ثابت بکنه که روز آخرتی یعنی. هم هست وگرنه که معجزه نبود وگرنه که خداوند تحبی نمیکرد حتما یه چیز غیر ممکنی هست که خداوند ممکنش کرده با عصای رسول الله صلو با اونم و یک اشاره که و احادیثم این قضیه و این واقعه رو تایید میکنه حدیث اناس در صحیح بقاری حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مجمعی صحابه نه کردن این واقعه که با چشم خودشون دیدن که ماه دو شد یعنی این قضیه قضیه باطنی نیست که ما بایم دنبالش بگردیم که نه ونشق القمر منظور یک امر معنوی هست و امر مادی نیست نه واقعه رخ داده صحابه هم دیدن غیر از صحابه هم تاریخ شناسانی که قبل در دوران رسول الله صلی اللہ و سلم بودن و کتابهاشون هست یاد کردن از این واقع مورخینی که بودن در هند و در چین نوشتن روخ داده این واقع و در این واقع نشانه عظمت محمد مصطفی هست علیه السلام من قبل گفتم و بازم تکرار می کنم نشانه عظمت رسول الله علیه السلام هست خداوند و این وشق القفل میخواد ثابت بکنه به ما که محمد مصطفی خاتم الانبیاء سید الانبیاء هست و معجزاتی که بهش داده برتر از معجزات دیگر پیانبران ما همه پیانبران, رو پیانبران خدا را قبول داریم موسی، عیسی، همه اونها را قبول داریم ولی که یک سری معجزات خداوند به محمد صلی الله علیه وسلم داده که به دیگر پیانبران نداده که بلکه بیشتر از اونها هم هست مثلا خداوند در قرآن یاد میکنه از معجزات موسی. بازم باید انکار بکنیم وقتی که با اساش به رود میزنی یا به دریا میزنه نصف بشه نفذ خلاسفه قابل این قابل. قابل تصور نیست باید انکار بشه باید دنبال تحویل باطنی بگردیم ولیکن حقیقت داره و ما هم باور داریم که دریا نصف میشه موسا و بنی اسرائیل نجات پیدا میکنن و فرعان و اتباعش غرق میشن بعد خدا من میگه که فرعان را با بدنش نجات دادیم تا اینکه عبرتی باشه برای شما ها. که بدنش هم همچنان هست به نصفی قرآن و الان جسدش هم هست کدوم یک از این دوتا معجزه بزرگتر در تصور ما با حسایی زده بشه به دریا نصف بشه یا اون ماهی که و این هم عظمت هست در اون فضا یک طرفش یک قسمتش نیمیش بره این طرف و نیمه دیگر به طرف دیگر کدام یک بزرگتر شکی داریم در اینکه ماه نس شدن بزرگتر بقول ما عظیمتر و بزرگتر از معجزه موسی علیه السلام نه تنها این معجزه بلکه معجزات دیگر که در قرآن میونه در سنت اون مثلا شق القمر ما در قرآن داریم ما داریم در سنت معجزاتی که برای پیانبر علیه السلام و بس بس صلی اللہ علیه وسلم شده و صحابه به همون کردن که از معجزات دیگر پیانبران بیشتر از جمله مثالها بحث آب رسول الله صلی الله علیه و اصحابش که چندین هزار نفر بهاش در تبوب بودن چشنش لب شده بودن آب نبود کاسه ای رو اووردن رسول الله صلی الله علیه وسلم دستشون رو در آب گذاشتن صحابی میگید دیدیم آب مثل یک چشم، چشمه از لا به لای دسان الله علیه و سلام جاری میشه حالا کدوم بزرگتره جاری شدن یک رودخونه یک آب یک چشمه از بدن یا زدن موسی به صخره به جاری شدن آب از است خاموس الی قوم فقلنا اضرب بعصاك الحجر ف انفجرت منه 12 عین توزه تا چشمه جاری شد کدوم یک خارق العاده تر عظیم تر از بدن چشمه ای داری بشه و از صخره بیرون یا صخره با زمین در اثر ولی بدن چطور صخره به زمین چسبیده شاید یک ریشه آبی داشته باشه از اونجا بیاد بیرون ولی بدن چطور نه تنها در مقابل معجزات موسی بلکه در مقابل معجزات دیگر انبیا مثل معجزه عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام در گهواره سخن گفت بچه ای بود نوزادی بود صحبت کرد سخن گفت با زبانش خب ما در سنت داریم که رسوله صلی اللہ علیه ازم این چیدین معجزه ای و بیشتر از اون ما گفتیم این دلیل بر این نیست که ما پیانبران و خدا را قبولن داریم همه, همه پیانبران را قبول داریم ولی که محمد و مصطفی یک سری برتری ها داره بر دیگر پیانبران چه در دینش و چه در اون معجزاتی که در بهش داده. از تعظیم کره؟ سخن گفتن یک زبان یا یک تنه نخل بریده شده یک چوبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روی اون می ایستادن خطبه می خوندن صحابه از حضره رسول الله صلی الله منبری برات درست میکنین که با پله بری بالا رفتن روی یک تنه نخل سخت براس رسول الله میان روی منبر میخوان برن بالا اون تنه نخل بریده شده نه زنده شاخوبرد نداشت بریده شده داد و بیداد میکند فریاد میکند گریه و زاری میکند صحابه میگید انین صدای آهناله و و فریاد اون تنه را ما شنیدیم پیچید در مسجد فریاد اون تنه نخ اون بی زبانی که زبان نداشت سخن گفت رسول الله اومد پایین از منور او را در آغوش گرفت. کدوم یک بزرگتره؟ سخن گفتن یک زبانی که حرکت میکنه یا اون بی زبان سخن بگوید؟ شکی درش نیست. این معجزه برتر از اون معجزه هست. بحث برتری ها هست. این معجزات هست. خداوند به روخ بشریت میکشد. که شما باید تابع محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بشید. چون این اوصاف را دارد. چون ما این چنین خلقتش کردیم. و این چنین قدرتها قدرت را بهش دادیم. چون عظیم شما با تابع این عظیم بشید. این درسها و عبرتها هست. ما انشاءالله در طی ذکر این نشانه ها بحث ها و درس‌هایی که هم هست انشاءالله یاد خواهیم کرد. و آخر رضا الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علیه محمد و علیه محمد.